خان بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده و ونشكره ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و آن نمحممدا ناب و رسوله صلّى الله عليه و آله سیگما بریکت اللّه في ارضه قال اللّه لاتين في كتاب الكريم ليني نال اللّه له ولا دماها ولا كني ناله اللهم منكم اللهم كن لوليك كالحجت ابن الحسن سلاماتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليك نحا قضا و قائدا للناس و تسكنه و شما چه احو فیها فویقام تبریک اقرم عید سعید قربان تو متصام به ملت بزرگ ایران و رهبر عزیزوشان و, و عزیزمان آیه کريبه ای که تلاوت شد در سوره مبارکه حج، آیه سی و درباره فرضیه قربانی است. که اصلا برای چی وسیعیه و برای چی قربانی؟ میفرماید لی الله لهو این گوشت گوسفند به خدا نمی رسد یعنی بالا نمیرود. به خدا ارتباط ندارد ولا دماغ خون این حیوان هم به خدا ارتباط ندارد اینکه در جاهلیت زیفت می کردن و بعد که اوسیه خون این گوزفن را به دیوار کعبه می ماریدن. یعنی این خدا ازش بهره میبره ما به تو دادیم نه این گوشت به خدا نمی دسه. خون هم به خدا نمی این لینه نالالله لحوم ولا دماغ ها. پس چی به خدا میدرسه اون چه به خدا میدرسه اون دل، اون روح، اون قلب، اون نوب، اون رابطه ایست که با خدا لن ینا الله لحومها ولا دماغها ولیکن ینا لحوت منكم تقوی شما به خدا میدرسه بلکه یعنی آنها تقوی من هم خدا این حیوان رو تسخیل شما کرد یعنی شما به این حیوان مسلط شدید بگردن گاو شطور که از انسان بزرگ توان قدرتشم بیشتره انسان به اون مسلط بشه به رابطی نهر کنه کنه خدا شما رو برا اون تسخیر داد و قلبه داد و قدرت داد چرا این چنینه به توکبر الله علامه هدا کن؟ تا خدا را بزرگ بدانید بالاتر از خدا هیچ ندانید همه چیزها را به خدا مربوط بدانید بدانید همه چیز از خداست قدرت ها از خداست عزت ها از خداست به خود تکیه نکنید به زمین نگاه نکنید به آسمان نگاه کنید اگر چنین شد به بشر المحسنین بشارت بده نیکوکاران را یعنی اگر کار انسان کرد برای خدا هم کرد این می شود محسن و نیکوکار و توجه به خدا اساس اینه این که می کعب سنگ است که رحم نشود که به خاج عبدالله انصاری هم نسبت داده شده حاجی احرام دگر بین بند ببین یاد کجاست یعنی دل رو مرتبط کن به صورت صاحب تکیه نکن نه به صورت کعبه نه صورت قربانی نه به صورت تواف بلی به باطن آن در همین قربانی است که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و عدیل سلم قربانی می کردن از جمله قربانی کردن برای فاطمه زهرا سلام الله علیه وقتی خواستن کار رو به گلوی گوسفند بگذارن پیغمبر اکدم خودشونم سیب کردن فرمودن یا فاطمه قومی الا اصحیتک فاطمه بیا اصحیت رو ببین زهرا آمد و نگاه کرد دید پیغمبر اکرام دعا کرد گفت اللهم تقبل منا و من آل محمد و من امت محمد فرمود فاطمه جان ها این قربانیت رو نگاه کن این گوسفندی که اینک دست و پا در خون میزنه زنه فی فی کل قطرت تقت رو مندمه ها ان یک فرلکه ما سلف من زنوبه. به هر قطره خونی که از این گوسفند فن می چکه خدا گناهان تو و اونچه گذشته است میبخشه این البته منحصر به موسم و کعبه و منا نیست خودان ایده قربان و قربانی کردن در هر کجا این ارزش و قیمت رو داره بعد فرمود بود که این چنین است به تو با این قربانی فاطمه جان به این ارزش وسیده ای فاطمه ازگر قالت یا رسول الله حازا لنا اهل البیت خاصتا عبل المسلمی این ثوابی که فرمودی این مال ماست مال اهل بیت، یا همه مسلمان ها هر کس که قربانی کنه پیغمبر اکرم فرمون للمسلمی فاطمه خوشحال شدتون حضرت زهره سلام الله علیها ها یک روحیه عجیبی در روایات هم آدم میبینه که نسبت به تمام امت اسلام بلکه نسبت به تمام انسان ها گاهی آدم در را سی قطرهای تاریخ می‌بینه عشق این ارزش برای ما و اهل بیت یا برای همه مسلمین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم این برای همه مسلمین است بنابراین ما از این آیه شریفه و از این اید قربان و اصحیه این پنج را بگیریم که کارها همه دست خداست بالا دست خدا دستی نیست لتو الله خدا رو بزرگ بشوریم کارها را به خدا باگذار کنیم یا این در دائره ای قرار بگیریم که قرآن می فرماید به بشر با تقوا با نیکوکاری، با احسان با خدمت به مردم حل مشکلات مردم رفع گرفتاری مسلمین رعایت و حقوق دیگران این چیزی که یک انسان و یک مؤمن باید داشته باشه تا زنده هستیم در خودمون به وجود بیاوریم حالا این یک است. یک قربان کسی انجام بده اینقدر ثواب داره حالا کمک ها به ارحام به بستگان حل مشکلات حل گرفتاری ها این ها تمام است که به ما ارتباط داره و تا زنده هستیم می توانیم از این ارزش ها بهرمن شویم که بعد از مرگ دیگه دست ما کوتاه خواهد بود اعوذ به من الشیطان شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصد ان الانسان لفی خوست الا الذين آمنوا و الصالحات و بالحق و بالسبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام على سید الانبیاء و المرسلین القاسم محمد و علا امام الخلائق امید المؤمنین علی ابن طالب و علا الرسول الزهراء زهراء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 خودم به همه عزیزان را به تقوا و ورع توصیه میکنم لیشهدو منافع لهم این آیه شریفه ای که در خطبه اول ایراد شد سوره حج آیه 37 بود به این آیه مبارکه همین سوره حج آیه 27 لیشهدو منافع لهم این آیه کریمه رو مرخوط این آیه به منافعی که حج داره حدیثی از امام صادق از امام رضا علیه السلام در علل که می‌فرماید حج علت حج وفود الی الله و حرکت به سوی خداست ضمناً می‌فرماید با منافعی که لمن فی شرق الاز و منفی فی غرب ها از اموال، حقوق، اموال، دماغ تمام چیزهایی که مربوط به تمام امت اسلامه که از امت اسلام در فصلهج افرادی حرکت کنند به کعبه و خانه خدا اونجا تو هم جمع شوند علاوه بر مسئله توجه به خدا و سیر معنوی علاوه بران به عمود کل جهان اسلام رسیدگی کنند این بیانی که رهبر معظم انقلاب دامزه لحب در باره حج داشتن و پیام که دادند همین نکته بود که جهان اسلام باید بیدار بشه حج فلسفه اش همینه و باید توجه کنند و ملت اسلام و امت از دولت ها و اصابی کشورها بخواهند که چه مصالحی برای مسلمینه چه مشکلاتی مسلمین دارند؟ امروز که دنیای استقبال این همه فساد ایجاد کرده نه امنیت برای مسلمین نه وحدت برای مسلمین تفرقه ها در دادن خونها اون مشکلات اقتصادی این وصلی رو که دشمن به وجود آورده سقم نیست و آن چه عواملی هستند یا عوامل سقم یا پشتیبانی سقم نیست می کنند این بس است که دنیای اسلام رو متاسفانه گرفته است و این وظیفه است برای همه ملت ها که این حق رو مطالبه کنند از دولت ها امنیت مطالبه کنند امنیت جان مطالبه کنند امنیت مال مطالبه کنند امنیت حیثیت و آبرو مطالبه کنند این مطالبه باید باشه فرهیختگان خطیبان جمعه نویسندگان در سراسر جهان اسلام باید به این مطلب بپردازند این مسئله ایس مهم که حج ریشد و منافع لهم بر این منافع توجه بشه امروز که ما میبینیم این وعث در دنیا به وجود آوردن اون فلسطینه اون سوریه است اون یمنه اون نقطه‌های دیگره این همه خونریزی ها و این همه جنایات این رو باید جهان اسلام و نخبگان بخواهند و دولتها رو متوجه کنند به این تکلیف و وزیفهی که هست دنیایی که به این وزده و به این صورته که اصلا امنیت رو برای جهان اسلام در همه امور به همزده در معنویات، در سیاست، در اقتصاد، در همه چیز این وظیفه همه ملت هاست البته قرآن کریم که می فرما این است که نخبگان و جاج در مکه جمع شوند به تصمیم گیری کنند با کمال تأصف این مسائل نیست ولی خوب دستگاه ارتباط جمعی همه چیز رو پهن میکنه کنه این وزیفه برای همه ما دنیایی که به این وضع در آمده این دنیا به یک امامت نیاز داره به یک ولایت نیاز داره این هم امامتی بارای قدرت امامتی که به دنیا رو تکان بده و این تحول به دست ولیگه است حجت ابن الحسن حسن له الفدا <تصفيق> به جمهوری اسلامی به الله از ولایت برخورداره که نیابت امام زمان ارباح و ناله بری در این حال میبینیم که دشمنان چنین اعاطه کردن کشور را وحدت در کشور اتحاد در کشور انسجام رسیده دید به دیگران و البته به نهوه در تمام جهان اسلام یک تکلیف روایی فیض از شهدای بزرگ و امام شهدای در چنین روزی که این که قربانه ما تجلیل میکنیم و همچنین از شهید خوججی و امیدواریم که همه مهمان امام زمان در چنین روزی ارواحنا دو الفدا باشند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن اعتینا کالکوتر فسل وانحر که رنحر هو الابتر اللهم انا نسأل که ندعوک بسم يا الاعظم الله اللهم صل على محمد و آل محمد پروردگارا فرد امام اص ارباحنا الفدارات تعجیل بفرما ما را از یاران او قرار بده خدایا نظام جمهوری اسلامی را به حکومت جهانی اون حضرت متصل فرما، پروردگارا پرچم اسلام را اقتدار مرحمت کن امت اسلام را کفایت بفرما، مشکلات مسلمین را رفت فرما، خدا یا مظلومانی که در گوشه و کنار در فلسطین، در بیانبار، یمن، نقاط دیگر هستند خدایا مدد کن ظالمان را نابود بفرما بیماران لباس عافیت انایت کن ما را به اون چه و پست توفیق مرحمت کن پروردگارا پرچم جمهوری را نگهداری کن عزت و اقتدار مرحمت کن ترچمدار را در پناه امام زمان ارباق و نال و الفدا حفظ بفرما کدران و مادران و زبیل و همه را به شهدا و امام شهده را قریق رحمت فرما و علیکم و رحمت الله